ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير اگر نسخ کنیم هر آیه ای را یا از یاد ببریم آن را می آوریم بهتر از آن یا مانند آن را. آیا ندانستی که بیگمان الله بر هر چیزی تواناست؟ است؟ تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولی آیا ندانسته ای بی گمان الله از آن اوست فرمان آسمان‌ها و زمین و نیست برای شما در برابر الله هیچ دوستی و نه هیچ یاوری ام اسألو رسولكم كما سئل موسى من قبل و من يتبدل الكفر الکفر فقد ضل سواء السبیل یا این میخواهید که درخواست کنید از پیامبرتان چنان که درخواست شد از موسی پیش از این و کسی که جای گذین کند کفر را به جای ایمان پس به راستی گم کرده است راه میانه را ود کثیر من اهلی الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من عديما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامريه ان الله على كل شيء قدير دارند بسیاری از اهل کتاب کاش میشد بازگردانند شما را پس از ایمان به حالت کفر از روی حسدی که از نزد خودشان است پس از آن که آشکار شد برای آنها حق پس اف کنید و گذشت نمایید تا بیاورد الله فرمانش را همانا الله بر هر چیزی تواناست و اقیم الصلاة و آت وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ من خَيْرٍ تجدوه عِندَ الله. اِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ و برپا دارید نماز را و بپردازید زکات را و آنچه پیش میفرستید برای خودتان از نیکی خواهید یافت آن را نزد الله بیگمان الله به آنچه میکنید بیناست و قالوا لن یدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانييهم قل هات برهانكم این كنتم صادقین و گفتند هرگز داخل نشود به بهشت جز کسی که باشد یهودی یا مسیحی این آرزوهای آنان است بگو بیاورید دلیلتان را اگر هستید راستگو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 هرکس تسلیم کند روی خود را برای الله در حالی که او نیکوکار باشد پس برای اوست پاداش وی نزد پروردگارش و نه است بر آنان و نه آنان گن میشوند.